ما یک زندگی فقهی داریم یک زندگی اخلاقی کمال واقعی مال زندگی فقهی نیست قاطعانه و میگم اشتباه حالا عرض میکنم، کمال واقعی که خدا پیغمبران رو فرستادن تا ما انسانه را به اون درجه عالی کمال انسانی برسونن با اخلاق با فقه نیست حالا شاهد میارم از نظر فقهی در زندگی زناشویی زن حق ندارد پخت پس کنه یعنی حق ندارد ببخشید وزیفهش نیست اصلاح کنه زن وظیفش نیست پخت پس کنه وظیفش نیست به بچه شیر بده وظیفش نیست جارو کنه این نظر فقهیه اما اخلاقا این است اخلاقا چیه اگر بنابشه کسی بخواد واقعا یک زن متبینه ای باشه که تو خونش عیسی اخلاق ارزش و کمال رو نشون بده میشه بگه من که وظیفه‌ام نیست پخت پز کنم نمیکنم یا اگه پخت و پز کردم مننت می‌گزارم یک جوون دانشجو به من میگو از بس مادرم تو خونه سر ما مننت میگذاره من حاضرم نون خالی بیرون بخورم تو خونه سر سفره نشینم شنو این مادرم به میکشه گفتم از اون طرف پدر حالا اخلاقیشو میگم فقهیشو پایای اخلاق ضعیف باشه چه مشکلاتی داریم از نظر اخلاقا شوهر فقط نفقه وظیفشه نفقه در حد چیه؟ یه حد معمولی لباسه حد معمولی خوراک دیگه مسافرت بردن رفع خستگی گردش بردن لباس اضافه خریدن پوشه. اینا که جز وزیفه فقهی که نیست اما واقعا اگر یک شوهری میتواند زن بچه شو در آسایش قرار بده دستور اخلاقی هست یا نیست؟ انجام نه اخلاقی این زندگی زندگی ایداره حضرت زهرا مسئله فقهی رو بلد نبود چرا شب عروسی حضرت زهرا پیغمبر دست زهره رو گذاشتن تو دست امیر المؤمنین پیغ... حضرت زهرا اعتراض کردن پدر جان شما ما را معین کن فقری که بلد بودن او پله بالاتری که میخواد تیکونه بیان میکنه پیغمبر فرمودن دخترم کار داخل منزل باشه یکیش چیه دست دس‌آس آس چیه اصیار دستی یه مش یک مش ذرت یک مشت, مشت جو به زحمتی تهیه کرده باید بریزه تو این آسیاب دستی انقدر دختر پیغمبر اسلام ملکه عالم وجود با این دستش بگردونه بگردونه بگردونه, بگردونه، تا آرد کنه دستها تاول زده است بعد خودش آب بریزه آرد رو خمیر بکنه بعد بیاد تنور روشن کنه نون بپزه بیاره بچه هاش به شوهرش میززه بارها دست تاول زده است پیغمبر بوسه میزنه امی فرماید ابو حفدا یا و معبی ها یه روزه پیغمبر از اینا اخلاق است یا فقهه کجا فقه هم وظیفه از زهرا بود این کارا رو بکنیم از اون طرف علی چی میکنه لعرض میکنه وقتی که پیغمبر وارد شد بچه تو دهواره گریه میکنه حضرت زهرا مشغول یک کار است امیرالمومنین هم جارو رو دست گرفته داره خونه رو جارو میکنه پیغمبر درواز باز کردن وارد شدم به کدام یکی کمک کنم علی فوری فریاد زد یا رسول الله فاطمه او خسبتر است توانش کمتره فاطمه سلام الله علیه ها ارز کرد یا علی او بیرون مشغول بوده اومده خونه نه پیغمبر نگاه میکنه به این دوتا این مبنای اخلاق است